جناب کرد خدایی درود بر شما درود بر شما امیدونم خوب و خوش باشید از شما سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردید من زیاد وقتتون رو نمیگیرم با مشغلی که دارید لطفاً بفرمایید به طور کلی شکنجه به چه معناست ببینید شکنجه بنابرای تعریف کنونسیون من شکنجه سازمان ملند که در 1984 یا 1963 خودمون در سه ماده تنظیم شده اینجوری میگه که شکنجه ایجاد عمدی درد و رنج‌های جسمی و روانی برای دست اطلاعات و گرفتن اقرار و یا برای مجازات ترساندن و یا هر مورد دیگری و یا هر مورد دیگری ای که توی بعضی از های که من دیدم از این کلماتش کردن این هر مورد دیگری رو بعضی را منتقل نکردم ولی مهم اینه که بدونیم این ایجاد درد و رنج های جسمی و روانی برای به دست آوردن اطلاعات مجازا و نمیدند و مورد دیگری واقعا عواقب وخیمی داره بله جناب من یه سوالی بکنم به صورت کلیه این چه کشورهای عضو وسیون من شکنجه نیستند اه ببینید اه و یا یا من سوال تکمیترش کنم و اون کشورایی هم که این مفاد امضا کردن یعنی در همون سال واقعا اجراش میکنن یا سعی میکنن که اجرا کنن و این خیلی مسئله مسئله که من نمیتونم به جواب بدم به خاطر اینکه میتونن تحریف های، یعنی در واقع تبصیره زیادی بر این ماده های شکنجه اضافه کنن چون عدم در رابطه با این ترورهایی هم که انجام میشه کلی تبصیره به ماده ها هر کشوری اضافه میکنه اما سازمان ملل از سال 1998 به پیشنهاد دانمارک 26 جوان رو روز جهانی اما از قربانی شکنجه اعلام میکنه از طوری دیگه هرچن این کنونسیونو من شکنجه که در سال 1982 جهار یعنی همون 63 خودمون به تص... تصویب اعضای سازمان ملل میرسه تا کنون 159 کشور به این کنونسیون پیوستن و در واقع میشه 130 و, و... و اما سال دو هزار مثال 157 مثال صد و پنجاه هفت کشور امضا کرده بودن این کنوانسیون ولی الان صد و پنجاه نه کشور و در صد و چهل یک کشور شکنجه انجام می شده در دو که الان در صد و یک کشور انجام میشن در تا رفته پایین بعد این این در واقع سی کشور ون که ایران این قرارداد امضا نکردن بله. و این جالبه که من چرا باید این سی کشور باشید یعنی در حکومت اسلامی ایران اینو امضا نکرده این کمواسیون من شکنجر رو، نه این نه امضا کردن با این که در قانون اساسی ایران فکر کنم سوال بعدیشو بله بله بله این اصلا این, این سوال من هست بیام در قانون اساسی حکومت ایران صراحتن اعلام شده که اق هر اقرار و اعلامی که مبتنی بر شرایط خاص و شکنجه باشه فاقد اعتبار یعنی واقعا این قانون اجرا میشه این قانون اصل قانون اساسی نگاهی به اخبار فکرم هر کسی خودش میتونه خیلی راحت به دست بیاره که این دیلان اجرا میشه یا نه <تصفيق> و مثلا در خود ایران 16 مورد رو اینا به عنوان شکنجه در نظر گرفتن که زیر این قانون منع شکنجهشون آوردن در قانون اساسی مثلا هر گونه ازیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظاران آن جا دارید که اینا رو براتون بخواهی بله بله بله لطف میکنید بله یکی شما هر گونه ازیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و آن دو نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر دست سلول انفرادی سه چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه چهار بازجویی در شب پنج بیخوابی دادن به زندانی شش انجام اقداماتی که اورفند اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود هفت فهاشی به کار بودن کلمات رکید توهین و یا تغییر زندانی در این بازجویی یا غیر آن هشت استفاده از داروهای روانگردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض نه محروم کردن بیماران و زندانی از به خدمات ضروری در نگهداری زندانی در محلهای با سر و صدای آزار دهنده یازده گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و محروم کردن امکانات و مناسبات بهداشتی دوازده ادم بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در درا در کنار زندانیان خطرناک سیزده جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی چهارده ممانعت از دسترسی به نشریات و, و کتب مجاز کشور پانزده ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانوادهاش 16 فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اقضای خانواده زندانی 17 ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود 18 ممانعت از انجام فرایض مذهبی تا دو میبینیم مثلا به تجاوز تو این جریان اشاره مستقیم نشده و ما با هر هر روز کافی هر, هر ماندی چه روزی این اخباری که در سایت ها هست در جاهای مختلف هست و میبینیم که این مواردی از این هیچ در مورد همیشه در حال انجام در ایران و این سال هاست که انجام میشه بله جناب که از من یه سوال دیگه دارم خدمتون که دیگه وقتتون رو نمیکیریم در مورد فعالیت های مرکز توانبخشی و پژوهش در مورد قربانیان شکنجه که تو کوپنهاک قرار داره و شما هم شاغلید در اونجا لطفا یه توضیحاتی بدید که این مرکز چه مرکزی و آیا بازدید برای عموم آزاد چطور میشه ارتباط برقرار کرد چطور این کار پژوهشی انجام میده این مرکز در سال هزار در واقع گذاری میشه و الان در دانمارک هم کارش آغاز میشه و یواش یواش به این سازمانی که الان هست تبدیل میشه که بزرگترین مرکز اسناد و کتابخانه شگنجه در دنیاست که البته این مرکز اسناد کتابخونه کتاب خود زیر سازمان دیگنیتیه و این موسسه دیگنیتی یا انستیتوی شکنجه کارهای مختلفی میکنه برای قربانیان شکنجه اینها به صورت تیم کار میکنن یک روانشناس و یک فیزیوتراف و یک مشاور اجتماعی به صورت تیم در مورد قربانیان شکنجه که توسط پزشک یا روان پزشک بهشون مر... معرفی میشه روی اینا کار میکنن و سر میکنن با روش های طوان بخشی اینا رو دوباره به زندگی عادی برگردانن چون در... شکنجه یعنی درست شکنجه شده مرحله رو پشت سر گذاشته ولی عواقب شکنجه چه به صورت به صورت‌های مختلف شخص را اذیت میکنه و شکل های چه به شکل مستقیم و چه غیر مستقیم و ناخودآگاه و این مخصه یک سایتی داره که تو این سایتش دسترسی به دست کم پنجنجاه هزار سند و مدرک و کتاب هست و میشه اینها رو ازشون وام گرفت و چون به چون به طور روزانه کار میکنه میشه به اونجا مراجعه کرد و از که داره استفاده کرد و خیلی از دانشجوها پاک پایان نامشون یا اوگهوشون رو در تکلیفشون رو میخوان در مورد خاصی که مدهب به شکنجه از سنویسن در با اینجا تماس میگیرن و کمک میگیرن که میتونن دانشجوها روانشناسی باشن یا پزشکی یا انواع دیگه تحصیلات از این سایت رو لطمی کنید شما آدرس اینترنتیشو بدید که اونایی که مثلا دوچار همون پی یا ضربات بعد از شکنجه شدن یا به یه نوع عوارض بعد از شکنجه رو دارن با اونجا تماس بتونن بگیرن یا اینکه به منابع اونجا اضافه کنن برای این هست دیکنتی Institute نقطه ORG و دیگنیتی هم میتونم اسپرش کنم میشه D-I-G-N-I-T-Y-I-N-S-T-I-T-U-T-E نقطه O-R-G و از طریق این سایت میتونن می شنوندگان به این سایت مراجعه کنن به اطلاعاتی که در این ذخیره شده با تشکر از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید نمیدونم فرصت دارید یا نه یک, چ... یک چند ثانیه هم میخواستم در مورد خواهش میکنم بخواهی سازمان, سازمان هایی صحبت کنم که در, با... در رابطه بافش کنجه فعال هستن و ایرانی هستن یعنی در واقع ایرانیانی که در این سازمان ها فعالیت میکنند که من میتونم اسمی چند تاشون بگم به طور خلاصه چند از این سازمان ها که همه هم سایت دارن و میشه روی اینترنت پیدا کرد یکیشون هست خبرگزاری فعالان حقوق بشر اخت، یکی از کمپین بین حقوق بشر در ایران و سوکوی ایران تریبونال رو میشه نام برد که این ایران تریبونال در شهریور هشتاد و شش سپتامبر 2007 هفت توسط جمعی از تانیان سیاسی و خانواده های جانسپردگان دهه 60 اگر یادتون باشه ماله. اون کشتاری که در زندان ها کردن آغازه به کار میکنه در سر هزار دوازده کمیته حقیقت رو اینا بنا و که کار این کمیته حقیقتیاب گردآوری انتشارات اسناد پیگیری قانونی متجاوزان و جنایتکاران و رساندن صدای خانواده های قربانیان شکنجه و زندان در سالهای اسب به جهانیان دیگه از مرکزهای مرکز اسناد حقوق بشر ایران و بیشتر میشه از سایت دیداران نامبرد و سایت عدالت برای ایران اینا هم سایت هایی هستن که حیفم اومد در این رابطه اسمشون برده نشه حتما خیلی ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشیم ما حتما این سایت ها رو در سایت رادیو البرز آوز خواهیم گذاشت که اونایی که میخوان وارد این سایت بشن جان باز از شما متشکرم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید روزگارتون بکنم روزگارم با. موفق باشید روز روزگارتون خوش از شما شنوندگان محترم من سپاسگذارم که با ما همراه بودید با آرزوی روزی که فهم بشر به جایی برسد که جایی برای شکنجه نباشد شاد و تندرست باشید